ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقالت تعالى فئشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دوستان گرامی و حضار بزرگوار از صحبت های نماینده مخترم مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی جناب مهندس کرد استفاده کردیم بنده به ایشان و مهمانان عزیزی که از گوش و کنار کشور به مناسبت جلسه ختم بخاری به شهرمون اومدن خیر مقدم عرض می کنم امیدوارم که خدای تبارک و تعالی برادر گرامی منجران به مهندس کرد را که یکی از نمایندگان فعال و زحمت کش شما در مجلس هست و سایر عزیزانی که مشکلات و معضلات مردم را اونجا پیگیری میکنند الله تبارک و تعالی بر توفیقاتشون بیفزاید و اونچرا که مورد رضای اوست نصیب همه ما بگرداند امروز در محفلمون جای حضرت شیخ الاسلام را خالی احساس میکنیم و در واقع وزن جلسه را هر وقتی که ایشون در جلسه حضور ندارن کم وزن میبینیم اما از خدای تبارک و تعالی امیدواریم که ما را از اون فیوضاتی و رحمت هایی که بر اون جلسه معنوی نازل میکنه ما را محروم نکند و در دعاهای مخلصانه اون بزرگواران علما و اهل مجلسی که در گشت سروان امروز به مناسبت ختم بخاری دایر هست الله تبارک و تعالی هممون را بهرمند بکنه آیاتی را که خدمت سروران عزیز تلاوت کردم خدای تبارک و تعالی وضعیت دنیا را قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح میکنه. و عواملی را که انسانها دچار اون بودند و به این سرنوشت مطرح شده بودند و به این سرنوشت گرفتار شده بودند اون عوامل را خدای تبارک و تعالی در قرآن مطرح کردند انسانهای قبل از بعست به تبع از هوا و حوسشون به دو دسته تقسیم شده بودند یکی اونهایی که دچار انحراف عقیده شده بودند و به بدپرستی مشغول شده بودند حیوانات را سجده می کردند، درختان را سجده می سنگها را پرستش می کردند و گروهی دیگر اونهایی بودند که اربابانی من دون الله انتخاب کرده بودن سر تسلیم در مقابل انسانها و در مقابل مستکبران فرود آورده بودن یک اده در خانه کعبه سیصد و مجسمه را جمع کرده بود و اونها را پرستش میکردند و عدهای دیگر در اطراف فرعون جمع شده بودند در دربار فرعون جمع شده بودند و او شعار میداد انا ربکم الاعلی من خدای برتر شما هستم و اونها او را پرستش میکردند وقتی بر جامعه این حالت حاکم بود خدای تبارک و تعالی می فرماید الله اذ کنتم اعداءا فاللف بين قلوبكم یاد بیارید اون روزگاری را که شما در اثر هوس پرستی در هوس نفس پرستی در اثر بت پرستی در اثر همانو پرستی شما با یکدیگر دشمن شده بودید بر جان یک دیگر می تختید بر یک دیگر رحم نمی کردید انسان ها رحم از قلبشون بیرون شده بود و برای اینکه به امیال خودشون برسند برای اینکه به آرزوهای خودشون برسند هم آن خودشون را لگت مال می کردند زیر پا می کردند اونها را نابود می کردند و الله تبارک و تعالی این حالت را می فرماید و کنتم شفا خفرت من النار انسانها شما در پرتگاه هلاکت قرار گرفته بودی فانقذکم منها خدای تبارک و تعالی از اون پرتگاه شما را نجات داد اونجرا که بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم برای انسانیت و برای بشریت به آورد سروران گرامی اولین مورد این بود که اونها را بر اعتقاد صحیح گام زن کرد و اعلام کرد که اون کسی که حاکمه اون کسی که لایق فرستشه اون کسی که لایق اطاعت اون کسی که لایق عبادت اون پروردگار یکتا و خدای قدرتمند خدای عزیز و حلیم خدای عزیز و قدیر و خدای حکیمه وقتی انسانها روی آوردن به این دعوت حضرت محمد رسول الله و به این دعوت قرآن گوش دادند سروران گرامی امنیت و آسایش به سراغ اونها را تمدن و پیشرفت به سراغ اونها را همون انسان هایی که خسیل القلب بودن همون هایی که جنگ های ساله و دویست ساله را دنبال میکردند آنها به اونجا رسیدند که در لحظات مرگ حاضر نبودند آب را در تشنگی مرگ آب را خودشون بنوشند به دیگران هدیه میکردند این کار آسانی نیست که یک انسان در آتش سکرات قرار بگیره و برایش آب بیارن این آب را به دیگران تعارف بکنه این تعلیم محمد رسول الله بود این تعلیم قرآن عظیم الشان بود اما در هر مقطعی از تاریخ که این تعلیمات گوهربار قرآن عظیم مسلمان نادیده گرفته نادیده گرفته شدند دنیا دچار همون مصیبتی بوده که در ایام جاهلیت بود وقتی اسکندر بر دنیا لشکر کشی کرد و میخواست به هندوستان خودش را برساند برای اینکه فرمان روایی خودش را گسترش بده برای اینکه به امیال خودش برسه چه اندازه آبادیها را اینها نابود کردند، چه اندازه شارها را نابود کردند. وقتی انسان انسانهای ستمگر و جبار و متکبر دیگر خواستند که به امیال خودشون برسن حکومتشون را گسترش بدن قدرتشون را توسعه بدن و بر دنیا سیطره پیدا بکنن چه اندازه از انسانها را کشتند و نابود کردن امروز هم سروران گرامی ما این تاخت و تاز را وقتی بر دنیا میبینیم امروز عزیزان محترم اگر میبینیم اینطوری بیرحمانه بر ملت مظلوم افغانستان تاخته میشود برای چی برای اینکه استکبار برای اینکه جباران دنیا به پرستش نفس خودشون پرداختن اینها امروز میگویند اون روز فرعون کاخ دا... خودش مینا... میبالید اون روز فرعون دستور میداد یا هامان ابلو لی سرحا لعلی اطلع علی اله موسی همان برای من کاخی درست کن برجی درست کن تا من بالای اون برج قرار بگیرم و ببینم اون الهی که موسی ادعا میکنه که خدایی وجود داره من ببینم این خدا کجاست امروز ستمگران به جای اینکه بر قدرت الهی نگاه بکنند و بر قدرت رب العالمین نگاه بکنند که اون انسانهایی که خدای تبارک و تعالی چنان قدرت به اونها انایت کرده بود که ینحتون من الجبال بیوتا اونها کوها را با دستشون میتراشیدند و برای خود خانه درست میکردند آقبت اونها کجا شد اونها وقتی بر ظلم و ستم؟ ستام را پیش کردند آقابتشون کجا شد این نتیجه نفس پرستی سروران گرامی امروز همه دنیا سکوت کرده در مقابل این حمله های وحشیانه استقبار جهانی آمریکا و انگلیس و اروپاییان بر علیه مسلمانان بر علیه اسلام و بر علیه قرآن دست یک می کنند و یک روز سروران گرامی ملت فلسطین را می زنند. یک روز ملت چچن را نابود می کنند. یک روز بر ملت کشمیر می تازند و یک روزی دیگر بر ملت افغانستان می تازند این عدالت های دنیا؟ اینهایی که دم از حقوق بشر می زنند؟ اینهایی که دم از عدالت می زنند. اینهایی که دم از مصاوات میزنند بیایم تعلیمات گهربار محمد رسول الله را نگاه بکنند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مصاوات بشریت را اصل و اساس بقای انسانیت دانست و فرمود ان ربکم واحد وان اباکم واحد وهو آدمو وآدمو من تراب فرمود که انسانها خدایتون یکیست پدرتون یکیست اون آدمه و آدم از خاکه همه ما به این خاک برمیگردیم عزت و سر بلندی را تعلیمات گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و برای انسان ها به بار آورد. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعلام کردند که الخلق و عیال الله همه مخلوقات اینها به منزله فرزندان خدا اینها به منزله اهل و عیال یک خانواده و خدای تعبیر کرد حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که روز قیامت خدای تبارک و تعالی انسانی را میگوید که بند من مریض شدم شما به عیادت من نیامدی و بند میگه خدای شما از مریض شدن پاکی پروردگار میگوید بندم مریض شد و شما به عیادتش نرفتی انسان دیگری میگه من از تو غذا خواستم به من غذا ندادی میگه پروردگار تو از غذا خواستن پاکی میگه اون انسان محتاج از تو غذا خواست بهش ندادی لذا اگر بر جامعه انسانی و بر انسانیت در یک جای ستمی روا شود و دیگران در مقابل اون ستم در مقابل اون ظلم سکوت بکنن سروران گرامی اینا به خدا قسم روز قیامت در بارگاه رب العالمین جوابی نخواهند داشت بله اینکه دنیا امروز مطرح میکنه در واقع دنیا مطرح نمیکنه استکبار جهانی مطرح میکنه که تروری ما با تروریست مبارزه میکنیم تروریست و ریختن خونهای انسانها به ناحق حرامه محکومه اسلام هرگز اجازه نمیده خون یک انسانی ریخته بشه ولو اینکه کافر باشد اما سوال اینجاست که چرا این خونریزیها صورت میگیرد خون امریکایی ها رنگین تر از خون مردم فلسطین نیست خونه هایی که در دنیا ریخته بشود هیچ فرقی با خون ملت افغانستان نمی کند چرا سازمان ملل به حرکت در نمی آید؟ چه بحت و سکوتی بر کشورهای اسلامی حاکم شده که اینها جمع میشن و وزرای کشورهای اسلامی و به صرف اینکه بله تروریسم کار بدی است ما حمله آمریکا را تا... تایید نمی کنیم باید جهان حرکت بکنه اگر حرکت نکرد به خدا قسم این, این استبداد آمریکا دامن همه را خواهد گرفت و همه را در این تسلط جویی و در این سیطره جویی خودش میبلعه و همه را فرو میبره اما او امروز میآید دنیا را تقسیم میکنه امروز میگه در افغانستان تروریست را تعقیب میکنیم بنشینند تروریست را تعریف بکنن و همه تروریستها را جا ندن چرا اونهایی که ملت مظلوم افغانستان را لطو پار بکنند ملت مظلوم فلستین را اسرائیل هر روز بمباران بکند و ملت فلسطین را خانه هایشون را تخریب بکنند اون تروریست نیست اون ظلم نیست اما اینجا بالاخره به بهانه کاشکی مدرکی نشان میدادند و متهمی را دستگیر میکردند مجازاتش میکردند اما به بهانه مبارزه با تروریست ساعت هشت شب ساعت چهار صبح بر ملت مظلوم افغانستان بمب بریزن ما معتقدیم که این بمب ریختن ها تروریست را ریشکن که نمی هیچ بلکه تروریست های دیگری به بار میاره عقده های دیگری به بار میاره انسان ها را مجبور میکنه که اونها دست از جان بشویند سعدی میگه هر که دست از جان بشوید هر در دل آیت بگوید اونهایی که عرصهر بر خودشون تنگ احساس بکنن دست به خودکشی میزنن دست به حمله حملههای انتحاری میزنند گرچه خودکشی کردن در اسلام مردوده ناجایزه حرامه اما چرا دست به اینجا کار زده میشود این را باید از سردمداران انگلیس پرسید از سردمداران آمریکا پرسید که اگر حقوق بشره و عدالت هست باید برای همه باشه همونطوری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود الراحمون یرحمهم الله اونهایی که بر دیگران رحم میکنند خدا بر اونها رحم میکنه ارحمو من فی الارض یارحم من فی السما رحم بکنید بر اونهایی که در زمین هستند بر اونها شما رحم بکنید تا خدای تبارک و تعالی تا اهل آسمان بر شما رحم بکنند لذا ما همه زمن این اینکه این لشکرکشی استکبار جهانی را بر ملت مظلوم افغانستان و بر کشور عزیز از افغانستان محکوم میکنیم از همه مجامع دنیا و از همه انسانهای آزادی خواه می خواهیم که در مقابل این حرکت ددمنشانه آمریکا و عیادیش خاموش نباشند و هرچه و هرچه در توان دارند هرچه در قدرتشون هست برای متوقف کردن این حملات بیرحمانه بالاخره به کار بگیرند و نگذارند که به خاطر امیال آمریکا و انگلیس و بقیه همدستانشون دنیا به آشوب کشیده, کشیده بشود نگذارند این کار رو نکنند و این اجازه را ندهند داره از تکتک تک شما ملت غیور زاهدان تشکر بکنیم در اینکه بالاخره امروز بر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردید حضرت فرمود من منکم منکران فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسان و ان لم یستطع فبقلبه فرمود هر وقتی شما امر ناپسند و حرام و ناجایزی را دیدید با دستتون جلوگیری بکنید اگر با دست نتوانستید حداقل با زبان او را جلوگیری بکنید شما اومدید امروز انز... اعلام انزجار کردید اظهار همدردی کردید با ملت مظلوم افغانستان الله تبارک و تعالی گفته های شما را و گام های شما را در بارگاه خودش بپذیرد و الله تبارک و تعالی این قدرت های اهریمنی را خود در میدان بیاید و اونها را جواب بدهد مطلب دیگری را که خدمت سروران گرامی میخواستم عرض بکنم اون در رابطه با جلسه ختم بخاری هست که اینشاء در روز دوشنبه اینجا جلسه برگزار میشه ولی به دلیل اینکه مهمانان از دور دست کشور تشریف آوردن جلسه از روز یک شنبه هست از نماز ظهر یکشنبه شنبه الله جلسه آغاز میشود و علما بزرگان اینجا سخنرانی خواهند داشت بعد از نماز عشاء انشاءالله جلسه دیگری است در مسجد شما و آخرین جلسه روز دوشنبه انشاءالله خواهد بود لذا از همه عزیزان و ملت با ایمان زاهدان استدعا می شود که در این جلسات شرکت بکنید در واقع شرکت شما در جلسه باعث رضای پروردگاره شرکت شما باعث قوت قلب مسلمانان است شرکت شما باعث اکرام و اعزاز مؤمنین و مسلمانان و مهمانانی که از دور دور بلند شدند و اینجا تشریف آوردند تا با چهره مبارک شما و با دین و دیانت شما با اعتقاد و ایمان شما آشنا بشند لذب بالاترین اکرامی که مردم زاهدان و اطراف زاهدان این مهمانان عزیز را خواهند کرد اون حضور پرشور و حضور پر رونقشون در همه مراهب جلسه هست سال گذشته خواهرانمون گلایه کرده بودند که به حال ما هم عضوی از پیکره این جامعه هستیم و برای ما ترتیبی داده نشده به همدلله امسال از بعد جلسه یعنی از بعد زور یک شنبه اینجا برای خواهران. جای تدارک دیده شده و یک قسمتی از مسجد را و خیابان توحید را به خواهران گرامی اختصاص دادیم انشاءالله خواهران در همه جلسات میتونن به راحتی شرکت بکنن هم در جلسه بعد از ظهر هم در جلسه شب و هم در جلسه روز دوشنبه انشاءالله الله گرامی هم به راحتی میتونن شرکت بکنن و روز دوشنبه را گرچه تعطیل رسمی هست اما حضرت مولانا فرمودند که هیچ یک از دوستان انشاءالله به مغازه نمی رود. و روز دوشنبه رسما به مناسبت جشن ختم صحیح بخاری و اعتای جوایز به حفظ انشاءالله دوستان از اول صبح مغازه ها را می بندند و مغازه ها همچنان که بسته هستند صبحانهی می خورند و سرازیر به مسجد خواهند شد همچنان که در سالهای گذشته بزرگواران این کارها را انجام دادند. حضرت مولانا وقتی داشتن میرفتن فرمودند که به مسلمانان زاهدان و بزرگان زاهدان سلام برسونید و بگید اون اعلامی که هفته گذشته شد اونطوری که انتظار میرفت دوستان به حوضه سری نزدند گرچه تشکر میکنیم از اون برادرانی که به ندای حضرت مولانا پاسخ گفتند و بالاخره مواد غذایی و پول آوردند اما با توجه به حجم مهمانان و با توجه به حجم جلسه این بودجه به هیچ عنوان کافی نیست و کفایت نمیکنه. ان در این یک روز و دو روز باقی مانده دوستان محترم مواد غذایی را میارند ان به حوزه میرسونند و وجه نقد هم برادر عزیزمون جناب حافظ محمد اسلام در خدمت شماست و صبح و شام اینجا عزیزان در حوزه مستقر هستند امیدواریم که برادران عزیز عنایت بفرمایند و تدارک جلسه را ان شاء الله بکنند یک نیازی که دوستانمون در حوزه اعلام کردند در باب مراسم ختم بخاری وسیله نقلیه هست برای آوردن مهمانان و برای استقبال مهمانان و برای برآورد کردن احتیاجات مهمانان از عزیزانی که ماشین دارن بالاخره هر یکی یک روز ماشینش را وقف بکنه اینجا بیاد بار راننده دوستانی اینجا هستند که آقای عمال الله ناروی به عنوان مسئول انتظامات اینجا ادهی از دوستان را نشوندن و امیدواریم که عزیزان محترم کمک بکنن ماشینهایشون را بفرستن اینجا که بتونیم مهمانان را استقبال بکنیم مهمانان را بیاریم و مشکلاتی نداشته باشیم صندوق های کمیته امداد را آوردن و امروز برای مردم افغانستان کمکی جمع آوری میکنن انشاءالله دوستان بعد از نماز دستی به این صندوق ها.